روز بخیر بینندگان عزیز و بزرگوارمون خیلی متشکرم که همراه برنامه خودتون نسیم شرقی هستید و میرسیم به نقطه‌ای که خود ما هم واقعا صمیمانه چش انتظارش بودیم حضور مهمان عزیز و گران سنگمون حکیم آل قدر استاد محترم جناب حاج آقای زیای دوست داشتنی که برنامه ما با حضور ایشون قوام و اعتبار و رونق میگیره زینت بخشیده میشه خیلی تشکر میکنم از عدب و احترام دارم عید گذشته حضرت علی هم مبارک باشه خدا شما و دستاننده کار ما همه رو با آفیت و امنیت بداره از شما هم متقابه دم تشکر می‌کنم. سالگشت تولد پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام رو به شما بزرگواران ملت شریف تبریک و تهنیت میگم خیلی متشکرم بینندگان بیشماری تماس میگیرن با سازمان و پرسش و سوال هایی رو مطرح میکنن مبنی بر اینکه مهمان عزیزمون استاد محترم جناب آقای ای متبهشون کجاست ایشان متبه ندارن تقاضا میکنم پرسش هاتون رو از طریق همین برنامه سامانه‌ی 30625 ذکر بکنید که برنامه نسیم شرقی ما میون بذارید انشالله به تدریج ما دست بندی میکنیم تایی کننده محترم برنامه حجت الاسلام کازمیان پون تمام پرسش ها رو استخراج میکنند دست بندی میکنند و اون رؤوس و اولادیت های پرسش ها رو حتما در اختیار مهمان عزیزمون قرار میدن تا بتونیم انشالله به تدریج به سوالات شما ایشان پاسخ بدن بنابراین تقاضا میکنم خواهش میکنم تلفن های سازمان و اشخال نفرمایید و شماره پیامک 30625 کمکان در اختیار شما است. سپاسگزارم. خب سوالات زیادی است از جمله کلیت، روده، کبد، چردنگی، نفس، هپاتیت، آرتوروز، سرماخوردگی، سرفه، سینوزیت، فراموشی یا همون آلزایمر، آرامش اعصاب، فشارخون خون بالا، بوی بد دهان، در خصوص پروستات که یه خاطرم هست یه جلسه ای صحبت فرمودید در مورد واریز، آرتوروز کمکاری غده تیروئید و اینکه فردی اثار کردن والده‌شون شبها بدنشون خیلی تعریق میکنه و برای افزایش و خواهش وزن اینها سوالاتی است که برای ریزش مو و بسیاری از مواردی که حضرت علی در جلسات گذشته پاسخ دادید این پرسشایی است که ما پیش روی داریم اهم مسائل که سبيل نذیکان خوبمون ارسال کردن و خواهش میکنم از هر نقطه ای که سلام میدونید پاسخ بفرمایید. سال فرمودیم فرمودین بعضیا پرسیدن مثلا کلیت روده اینها غذاهای ترش و تند و تیز نبر بخورن در داخل قضا یا به همراه غذاشون یک چند عدد زنجبیل و همچنین پودر هسته انار بخورن اگر کسی مثلا بحث هپاتید بود باید باید ببینیم این کبد چربش چه نوعه آیا نوع ایه بحث زردی عادی یا یرقان عادی اینجا چربی های با ترانس بالا از جیره قضاییشون حذف کنن بعد فقط روغن زیتون تو جیره غذایی باشه. هر روز یک لیوان آب سیب تازه بخورن یا یک دونه کدو مسمه، کدو رسمیه با پوستش بخورن به صورت خام یا بخار پس. اگر فرض کنید نوزاد باشه زردیه در نوزادان یا بیماری اکتر اینجا سه جوره گایی خفیفه، گایی متوسطه، گایی شدیده سرگردن نوزاد گرفته و کره چشمش سفیدش اینا مایل به زرد شده پشت نرمه های گوشش رنگش زرد شد تا سر رو گردن این خفی تا نیم تنه متوسط کل بدن شدید تو پزشکی جدید پیش فوق تخصص نوزادان میرن با تاپش اشعه موارا بنفش دستگاه تشتید کننده این مسائل کرد اما تو پزشکی گیاهی و پزشکی اسلامی اگر اکثر زردی نوزادان خفیف باشه یک قاشق چایخوری آب پوست کدو مصم بعد از اینکه شستن و زده افونیش کردن حالا اینه میتراشن با پشت چاقو فشارش میدن یک قاشق چایخوری آب پوست کدو مصم کافیه در درمان زردی خفیف نوزادان یعنی روزی بار نه فقط یک بار فقط یک جلسه بله فقط یک بار یک قاشق چایخوری آب پوست کدو مسعم مادر این اولاد تا یک هفته هست همه چربی یا فقط روغن زیتون تو جیری غذایش باشه یک قاشق فولخوری با نهار یک قاشق فولخوری با شام و هر روزم یک لیوان آب سیب تازه بخور اگر این متوسط بود زردی نوزار این میشه دو قاشق چای خوری مثلا امروز ساعت هشت یه قاشق چای خوری به نوزار میرن فردا هم باز آب پوست کردم و سمت تازه یک قاشق چای خوری شد دو قاشق چای خوری تمام شد دارو بچه مادر تا دو هفته حسف همه چربی ها فقط روغن زیتون میخورن و روزی دو لیوان آب سیب به تازه میخوره اگر زردی نوزاد شدید بود اینجا سق قاشق چای خوری میشه در سه روز متوالی پشت سر هم سر ساعت مثلا هر روز اول ساعت هشت به این بچه یک قاشق چای خوری آب پوست کرد و ما تازه بعد از سه روز تموم شد دارو بچه تموم شد ولی مادر این نوزاد به مدت سه هفته حس همه چربی ها فقط روغن زیتون یه قاشه خوری با نهار یه قاشه خوری باشم و روزی سه لیوان سیب تازه هر هشت ساعت یک لیوان هم از طریق شیر مادر و هم از طریق همون قطریه که او بچه تجویز شد زردی نوزادان یا بیماری اکتر خوب میشه انشاءالله برای افرادی که تنگی نفس دارن و بعد مقتلاب آس میشه اونها چیزهایی که باعث ایجاد آس میشه مثل گردخاک زیاد، دوده زیاد، دخانیات یا بخارات مسمون از مشتقات شیمیایی مثل استون، آمونیاک، آرسنیک و مانند اینا اینا باید اجتناب کنن بعد ماسکی داشته باشن، ماسک کاغذیشون رو هر دو ساعت عوض کنن در درمان آسم خفیفشون روزی دو استکان آب شررم و دو استکان آب زردک بخورن کافی. اگر آسمشون متوسط باشه هم اضافه کنم که اجور. اگر آسمشون شدید باشه اونجا میتونن جوشانده برگ بارهنگ روزی یک استکان تا سه استکان بخورن هر ه ساعت یکی یا بی۴ ساعت کی آسم شدید خوب میشه نیازی به و فور اینها ندارن که از سه تا تا 7 تا 9 تا بزنن چون در اونها چه استنشاقیش چه که اسپریش و مانند او مواد کورتون داره که 15 بیماری میاره گرچه به عنوان یک مسکن قوی خوبه که تنفس بیمار راحت بشه اما درمان نمیکنه متشکرم افرادی که هپاتیت دارن چه باید استفاده در هپاتیت هپا به اصطلاح انگلیسی ها یعنی کبد یعنی جیگاسی ایت یعنی بیماری التحابی وقتی میگیم هپاتیت یعنی بیماری التحابی کبد اگر نوع a باشه که یرقان عادی، زردی عادی گفتیم حصف چربیا و خوردن آبستی به تازه. اگر نوع b باشه باز 95 درصدش غیر واگیره 5 درصدش واگیر اگر واکسن بزنن قبلش چه بهتر؟ اما اگر مبتلا ها دیگه دارو نداره پزشکی جدید فعلا اما در پزشکی اسلامی و پزشکی گیاهی میتونن از سه دارو قوی استفاده کنن حتی در درمان هپاتیت بی ویروسی یکی سکنجبین آنسالیه یعنی سکنجبین و پیاز دشتی بعضی ها پیازموش هم میگن حالا این پیاز دشتی رو در همی سکنجبین میجوشنن. بعد آبش رو صاف میکنن. روزی یک قاشق پلو تا دو قاشق پلوخوری خوری میخورن. هر دوازده ساعت یک قاشق پلو خوری. یکی دیگهش شما از شد که سکنجبین نعنایی. در مشهد مقدس این اولیش و اولین بار آقای دکتر سید احمد ساقبی فرمود. که متخصص داخلیه و فوق تخصص نفرولوژی و رئیس دانشکده طب سنتیه دانشگاه فردوسیه که فعلا بازنشست شدن این دومین دو رو آقای دکتر سید علی ابو الخطیب در کتاب درمان با گیاه که سکنجبین نعنایی یعنی آب به اضافه عسل گرم مثلا عسل آبشند نعنا به اضافه عرق نعنا به اضافه سکنجبی این چهارتا رو قاطعه هم میزنه یک لیوان از این مخلوط میخوره هپاتیت بی به نوع ویروسی هم خوب میشه یک بار دیگه نه قرصایی هم هست که اصلا پزشکی جدید زده در تخصصی گیاهی و با تو بازار هم اومده که اون قرص گیاهی از گیاه کنگر گیاه کنگر در درمان کبد چر ولی طبق نظر متخصص گیاهی باید عمل کنند خود سرانه نباش قرصش هم تو دارخونه هست چیزای دیگه هم هست به عنوان پیشگیری یا به عنوان درمان میتونن استفاده کن یکیش که ماشاءالله زعفرانه که خراسان مهد زعفران جهانه خب اینجا نیم گرم تا یک گرم تو 24 ساعت حالا اگر کسی در مناطق شردی یک گرن. اگر کسی مناطق خوشک و نیمه خوشک نیم گرم، پودر زعفران مخلوط در آبجوش بلن، هم پیشگیری از کبد چرد میکنه، هم در درمانش نقشه ویژه داره. و بعضی از دانشمندان، حتی از برادرهای اهل تصنون که از پروفوسورهای کشور هندوستان هستن، مثل پروفوسور مولانا، در یه کنفرانسی که طب اسلامی بود در دانشگاه فردوسی تالار دانشکده ریاضی باز ایشون نطرح کرد همونجا بعضی از دکترای محترم ما مثل دکتر هاشمی و مثل دکتر کرد اپشار بر گفتار ایشون حاشیه زدم چون ایشون به صورت مطلب گفت خب اون منطقه هندوستان شبه قاره هند شرجی زیادتر از شمال و جنوب ماست اونجا تا یک گرم بخورن اشکال نداره اما در کشور ما که خشک و نیمه خوشکه مصرف باید بیاد پایین بشه نیم گرم یا کمتر پس پیشگیری از کبد چرب و درمان حال اگر کسی کبد چرب داره و زیاد شده میتونه با مخلوت محلول عرق کاسنی و عرق شاتره سریع کبد چرب بشه پایین مخلوط محلول عرق شاتره با عرق کاسنی سریعا میشه هپاتیت بی و کبد چرب و پایین آورد متشکرم باشه استاد زیایی بفهمید افرادی که دچار رخوت، خواب‌آلودگی، کوفتگی بدن و خستگی مفرد هستند چه گیادارویی باید. باید استفاده کنند اینا چند علت داره گاهی کمخونیشون شدیده گاهی گردش خونشون ضعیفه گاهی قلیزت خونشون بالاست و بیماری های متابولیکی دیگر مثل چربی خون، قند خون یا کمکاری کلیه اینا همه اینا که شماردن خواب آلودگی، چرت زدن، کرخی، کوفتگی میاد حالا هر کدوم از این بیماری های ای بود اگر درمان کنه اون حالتاش خوب میشه مثلا اگر قلیزت خون بود و گردش خون ضعیف خونش رقیق کنه میتونه به جای آسپرین بچه، وارفارین و یا هپارین میتونه از آب، آبجوش ولن، آلو بخارا، تمشک، عناب، ریواز حالا هر کنون تو منزلشون ده. میتونه از اینا استفاده. اگر مثلا قلزت خون بود توان با مثلا لخته خون. حالا حلالای قوی. مثل جوشانده عناب. باز زرشک. این دوتا قطیه هم. مخلوط در نسبت مساوی باشه بهتر. مخلوط اناب و زرشک رو به یک بیست دقیقه. بعد آقشه بخوره. هم وقت کننده قویه هم زد لخته خون و لخته رو پاک میکنه. یک بار دیگه قندش بالاست. فشار هم داره. چربیش هم بالاست. حالا میتونیم از زغال اخته زغال اخته استفاده کنیم روزی 14 عدد بی نمک میتونیم از سبزی خرفه استفاده کنیم میتونیم از کرفس خام استفاده کنیم کرفس خام زغال اخته و همچنین شما از شبت که زغال اخته هر ستاده میبود پایین کرفس خام هم پایین یکی دیگه هم بود سبزی خرفه خب این سه تا هم فشارش میانیم پایین هم چربیش میاریم پایین و هم قند خونشو تا صاف بودیم؟ از این حیث بی‌حوصلگی کم کمش یه بار دیگه شخص هم کمخونه هم فشار خونش پایینه اگر کمخونه کمخونیشو بعد رو بگذارین باز ببینیم نوع کمخونیش چیه اگر مثلا بیماری های همولیتیک که ژنتیکی مثل فاویس یا کم خونی داسی یا تالاسمی داره مینور یا ماجور خفیف و شدید داره میتونیم اثر وضعی این بیماری ها رو کاهش بدیم اثر وضعی سوءش با مصرف شیره یعنی شیره خرما شیره انگور و شیره توت به نسبت مساوی این ستاقاتی هم بشه روزی یک قاشق 풀و خوری تا دو قاشق بخوره در بعضی مریضا مثل تلاسمی شدید در 24 ساعت سه قشب پلو خوری میکن. هر 8 ساعت یه قشب پلو خوری. مینور که بهبود حاصل میشه. در تلاسمی ماجور شدید نیاز بیمار به واحد خون کم میشه. کم کم دوز مصرف انتقال خونش نصف واحد میشه. یعنی 350 سیسی. سی. یک بار دیگه مؤمنان فشار خونش همیشه زیر دهه. این کسل کسل کم حوصله گاهی بیچاره افسردگی میشن هم کم خونی هم فشار خون زیر 10 استراب دلهره شون بیشتر میشه دست صفاشون یخ میکنه زود از کوره در میرن کارهای شخصی شون نمیتونن به اتمام برسن کارای اجتماعی رو سعی میکنن فرار کنن فرار از مسئولیت چون حال نداره توان نداره خدا اینها هم میتونن از سه شیره استفاده کنن یا طبق روایات اهل بیت عصمت و طهارت در وسائل جلد 17 چاپ اسلامی تهران میگه بعد هر قضا هفت خورما حالا بعد از نهار هفت خورما بعد از شام هم هفت خورما یواش یواش مصرف میکنن اینجا هم ضعف عمومیشون خوب میشه هم کمخونی فقرا آهنش خوب میشه هم خون زیر دهش کم کم میاد یازده و دوازه هم ضعف و ازولات ارادیش که بیماری دیسترافیه اینم خوب میشه توان شخص میره بالا روایاتی هم هست که از امیر المؤمنین علی علیه السلام خدمتون بخونیم تیام ممند و تبرکم علامه محدث نوری الله مقامه در کتاب مستدرک جلد 16 صفحه 24 امیر المومنین علی علی السلام می‌فهمید: قوت الأجساد و قوت الأرواح الإطعام خورک بدنها قزاز که برات قزاز یاریزم و قزی بخور که توی یک جلسه توضیح دادم دوچاره سوء تغذیه نشه و سوء تغذیه اگر داره درمان کن با غذا و یاریزم و این خوراک بدن هاشون اما خوراک جان هاشون یعنی روان متعادل روح فعال اطعام کردن، یعنی غذایی ها ریز که برای خودت میپسندی تازه باشه بهداشتی باشه سالم باشه طبق نیاز باشه مقدار مصرف لازم باشه حلال باشه طاهر باشه همچنین طیب باشه اونی که برای خودت میپسندی تو خوراکی و آشامیدنی برای دیگران هم بپسند حالا فامیل یا غیر فامیلشی که دعوت میکنه بهترین پذیرایی داشته باشه به مقدار توانش قضا و ریز مقذی بده حتی پدر گرامی و پدر صالح باید قضا یا ریز مقذی بده تا زنش از خوراک اولاد و خانو بری بشه اگر نه بر زمش هست مشکول زمش اگر بیاد اوسانسای شیمیایی بده میلیون ملیون هم خرش کن ولی قضا یا ریز مقذیب زنبتش نده با زمش مشکول هنو واجب نفقه رو عمل نکرد پس اطعام کردن به نوع مطلوب صحیح هم علمی هم شعری این قوت الارواحه الاطعام و قوت الارواحه الاطعام این که قضا و ریزم و قضی مناسب به فامیل غیر فامیل میده این خوراک جان انسانها و های انسانیه اگر کسی مومن اطاعت حکم خدا کنه و این وقتی ممکنه که متوازع باشه در مقابل حکم خدا مثلا الان ایام دهی مبارکه چند مناسبت داره هم تولد رسول الله هم تولد امام صادق علیه مصالات و السلام و صلی اللہ علیه و آله علی و سلم، و هم مؤمن دهی مبارکی فجر ورود حضرت امام خمینی و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی که کل ملت شریف ایران زحمت کشیدن وحدت پیرامون بلایت حق داشتن این علامت فعال بودن عقل و علامت فکر خوب متمرکزه و زمین سازی برای تشریح فهمایی مولا صاحب زمانه که امام خوبانه حالا اینجا تو روایات امیرالمؤمنین علی علی السلام میفرماید من تو و قلبه دل اله لم يسعن بدنه من منطاعت الله هر کسی قلبش برای خدا تواضع داشته باشه بدنش از اطاعت و تبعیت حکم خدا خسته نمیشه هر چی قرب و صدق محاصره اقتصادی کنن، نظامی کنن، اینا اینو از کار استیخ هستن. همه با همن برای اعتدال کشور جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنن، دنیاشون خوب میشه، آخرتشون هم خوبتر میشه. برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کردن، یه الگوی واقعی میشه برای سراسر مردم و منطقه و جهان. هم به تو دنیا هم به تو آخره خیلی متشکرم خواهش می‌کنم خب هنوز گفتگو داریم با مهمان عزیزمون دانشمند محترم حکیم فرزانه استاد زیایی روزگوار که تشریف موندن پنج ها خواهش میکنم پرسش هاتون رو از طریق سامانه 36625 با ما در میان بگذارید راجع به آن فلانزا صحبت میکنیم در بخش بعدی سرمخوردگی، سورفز، سینوزید، آزایمر، آرامش و تمدده اصاب، فشار خون و بوی دهان. هنوز گفته بود داریم، یه بخش کوتاه می‌بینیم و دوباره خیلی زود برمیکردیم بچه‌ها متشکرم از همراهی سمینار شما بینندگان عزیز اعضای محترم با برنامه خودتون نسیم شرقی خودمون رو ادامه میدیم با استاد و مدرس محترم طب سنتی و طب اسلامی حکیم علی جناب حاجی آقای زیایی، عزیز و بزرگوار خب راجع به کلیت روده تپت‌های چرد تنگی نفس آسمافاطیت صحبت فرمودن خب جلسات قبل هم مطالبه بسیار ارزنده ای رو مطرح کردن راجبه اگزما درمان اگزما سرماخوردگی از فهمت پیش از اینکه پروتکل رو مطرح بکنیم این روزها کلینیکا ها حاجی زیادی درمانگاه ها بیمارستان ها خیلی شلوغه آنفلوانزای شایع هست چه کار کنیم که مسئولیت ایجاد بشه و اگر خدای نکرده مبتلا شدیم چه گیاه دارویی رو استفاده بکنیم برای درمان و تسریع اون چون هوا سرد و خشکه درزه میزان بارش هم یه مختصر کم شده به بکنم و فضل خدا بارش مناسب و نزولات آسمانی اینشالله بیاد اینجا باید وقتی از اتاق میرن بیرون یا محل کار میرن و دستمال جلوی بینی و دهنشونه بگیرن دستمال هم یه مختصر مرتوب کنن یا ماسک همین کاغذیشون باشه حتما دوبامی که در محیط اتاق چون بخاریا ها قالبن بخاری های گازیه این رتوبت حوار هم خوش میکنه بزاست سوزش در گلو انتهای بینی اینها هم دارن تنفس راحت باشه و این حالت های آلرژیکی هم کم بشه بخور اوکالیتوس تو فضای اتاقشون باشه از زده ویروس های طبیعی، مثل یک پیاز یک پیازو که چار قسمت کنم، چار گوشه اتاق بذارن خود همین زد ویروس سرماخوردگی و آنفولانزاست خود پیاز در مجاورت هوا مسموم میشه نباید بخونن با عنوان یک زد افونی عمومی بوی این در فضای اتاق باشه چار اتاق بذارم. اگر آبریزش بینی دارند و زیاد که دستمال کاغذی به گردش نمیرسه انقدر زیاد شده اینجا بخور سپند اسپند مثلا یه مش اسپند خالص رو چیزی دیگه قاتیش نباشه میزن تو آب جوش این که قلقل میجوشه بخارش رو نفس بکشن آبریزش بینی قطع میشه دیگه از این قلم های ضد آبریزش بینی بینی نیاز میشه و یا داروهای آنتی هیستامین هم از بخور سپن هم خود سیب یا آب سیب یک آنتیزدامین طبیعی، چون سبب تنظیم و تحریک گیرنده ای اچیک در جدار مهده میشه مطالب دیگه هم هست تو بحث آمفولانزا و اینها که بخورهای مختلف هست مثلا گیاه پنیرک گیاه ماهور یا مثلا گل و یا گلبرگ‌های برگ های آفتاب گردان حتی کتاب های مستقلی در این زمینه نوشته شده تو بحث سینازیت، آنفولانزا و سرمخوردکی برای درمان آرتروز چه گیاهداروهایی مناسبه؟ آرتروز چون سایدیگی مفصل و حالت اسفنجی نوک اصطخون هست چون مثلا اصطخون ارلان و استخونه پا تو مایه مفصلی شناوره و با تاندون ها و منیکس ها و دیست های اطراف و کشکک زانو و بقیه مساعد میشه یعنی توی یک راستاز وقتی مایه مفصلی افت میکنه نکه استخونه که اسفنجیه به هم برخورد میکنه این استیم مثبت و منفی برق حالت جرقه بزنه به اصطلاح پزشکی التهاب. مفصل میشه آرتریت روماتوریت که اونم باز چند قسم حالا اگر بیمار محل نده افت مایه مفصلیشو درمان نکن و یا ورزش های سنگین کنه مثل وزنه برداری مثل فوتبال و یا بار سنگین برداره این نکه استخونه که اسفنجیه سریع سابیده میشه حالا سایش که حاصل شد میگیم بیماری آرتراست بیماری آرتروز درمان قطعی ندارن ولی میتونن جلوه پیشرفت بیماری رو بگیرن تو پزشکی جدید هاجا قرص شیمیایی ویتامین B1 میدن 15 تا 20 عدد قرص شیمیایی کلسیم دی ایرانی میدن قرص شیمیایی کلسیم قزوغ آمریکایی میدن شما میتونید به جای اینها جایگزین بساری مثلا شیر عسل شیر خورما پودر سنجد با شیر این ستا قوی تر از اون ستا که بزرگواران تجویز می فرمید. برای درمان آلزایمر یا فراموشی های حالا یا مقطعی یا طولانی مدت بفرمایید اگر کسی نسیان داره یا فراموشی شدید و اگر کسی دمانس یا زوال عقل داره و اگر کسی آلزایمر یا زوال عقل پیش رونده داره میتونیم از داروهایی که امام رضا علیه السلام فرمودن در رساله زهبیه که هفت نسخه خطی در آسان قدس رزوی داریم و همچنین فرمایشات امام صادق علیه السلام که فرمودن استفاده کنیم قوی ترین داروی ترکیبی. در پیشگیری و درمان این سه بیماری که شماردن نسیانه شدید که فرامشه شدیده دمانز زوال عقل آلزایمر زوال عقل پیشنمنده این دو داروی ترکیری فرمایش امام رضا علیه السلام اینه که احلیجات, احلیجات در اصل پرورنده شود یشد العقل خب جمع عرفی حداقل اقل ستاست همزون از احلیجات مثلا حلیله سیاه دوم حلیله زرد سوم حلیله کابلی، حلیله های دیگه هم داریم حلیله چینی هم داریم حلیله کبیر هم داریم حالا همی ستا که قدر متیقنه بعد هسته یه حلیله زرد و هسته یه حلیله کابولی در میارن چون از نظر تبگیه هی سمیه ولی روایت امام رضا علیه السلام مطلبه یه نکته زریفی توش داره چون با بعضی چیزها میشه بعضی درمانها انجام داد مثل فرض کنید نیش زنبور سمیه اما در آرتروز و در آرتریت نقش داره در جای جای جهان تو بحث زنبور درمانی استفاده میکن. مگر بیماری که حساسیت داره به نیش زنبور و دچار بیماری شک آن میشه خب برای او تجویز نمیشه. نه. چون اینجا حالات اورژانسی میشه اما در غیر بعضی مسائل نه میتونیم استفاده کنیم. مثل که از جلله رویال میتونیم استفاده. کنه. حالا در اینجا چقدر رو هر کدوم اینا را پودرش میکنیم بعد این ستار رو قاطی میکنیم مثلا ده گرم ده این ستار رو پودر میکنیم حلیله سیاه حلیله زد و حلیله کابلی پودرش میکنیم قاطی یک کیلو اصل گرم مثلا اصل آویشن نعنا اگر تجمع مایات اضافی بافتی داره اصل گل استخدوست اگر نرهتی پوستی هم داره اصل گرم پس این سی گرم و قاطی یک کیلو اصل خوب هم میزنیم حالا مریض هر روز صبح یه قاشق مربو از این مخلط بخوره. یه شد دلعقل که اول توضیح داد یه بار دیگه شخص حافظش بسیار ضعیف به گونه ای که اگر مطلب آن آن بهش بگین پنج دقیقه دیگه یادش نیست. که اگر همون مطلب سوال کنین جوابتونه بده. اینجا فرمایش امام صادق علیه السلام عمل میکن. سنا مکی سنا مکی یه نوع سبزیه گیاهه سنا مکی به اضافه سعده هندی تو روایت داره سعده هندی قالبا تو ایران کمه سعده کوفی میدم اشکال نداره ولی خواستم بگم روایت سعده هندی بله. به اضافه فلفل سفید که همون فلفل سیاهه تو کیسه هایی میریزن چند روز تو آبه بعد در میرن اینا رو خوب مالش میدن پوسش کنده میشه مغزش سفیده اسمش از فلفل سفید به اضافه کندور ذکر کندور ذکر یعنی کندور مرغوب خوراکی کندور صنعتی نه کندور مرغوب خوراکی به اضافه زعفران پس کلن این دارو ترکیبی که امام صادق فهم بود پنج چیز داره سنا مکی ساده هندی فلفل سفی به شما ارز که زعفران و کندور مرقوب خوراکی به نسبت مساوی مثلا پنگرم پنگرم پنگرم پنگرم پنگرم این خوب پودر میکنیم مخلوط هم میکنیم قاطیه یک کیلو اثر یا نیم کیلو اثر خوب هم میزنیم. حالا این مریضی که حافظش به شدت ضعیف شده و برداشت اطلاعاتش بسیار کنده هر روز از این مخلوط یک قاشق چایخوری خوری سرپر میخوره. یک مسکال تقریبا میشه چار ممیز چلشیش صدومه گرم. تقریبا بگو پنگ گرم. یک قاشق چایخوری سر سرخالی چار گرمه. سرپر میشه پنگ گرم. یک آشد چای خوری از این میخوره طور وایاتش اینه میفرماید حد هفت روز حد اکثر چهارده روز میگه به قدری حافظش قوی میشه که اگر کسی نشناسته چون میگه این نکنه صاحره ما هر چی سوال میکنیم سریع جواب میده جوابش هم درسته نه اینکه لفوازی کنه یا محملگوی کنه نه. جوابش هم دقیق درسته این تو این مواردی که فرمودید در این اتاری ها هست خنابر بله عطاریایی که دکتر باشن که اشتباه دارو ندن بله در ست مشهد 12 تا اینها اجازه نسخه نویسی دارن از دانشگاه فردوسی مشهد متشکرم بله. تو اگه به من اشاره بکنن چقدر فرصت داریم خب پنج دقیقه زمان داریم تو این 5 دقیقه میتونیم بپردازیم به درمان بیماری اگزما یا اگزمای پوستی حاج اینا باید ببینن چون که عوامل الرجین حساسیت زاد تا کنون 99 شناخته شده بعضیا حساسیتشون به اسید بالاست که در سابون ها و شامپو است. اینجا صابون و شامپوشون باید کم اسید قرار بدم و یک بار بزنن نه چند بار هر روز هم لازم نیست بزنن فرز کن هفته دوبار میره همون تابستون یا هفته یک بار میره همون زمستون همون یک بار صابون و شامپوی کم اسید بزنه از هر کدوم کافی بعد اگر سرکی سیب دارن در منزلشون سرکی سیب دارن طبیعی اینجا میتونن با پنبه آغشته کنند به محل اکزما و خارش پوستی بکشن یه چند بار ببرن بیان خارش پوستی و اکزما خوب میشه اگر از این قوی تر بخون یعنی هم خارش پوست و اگزما داره یعنی هم حکه داره و هم التهاب پوستی هم خارش پوست داره و هم اگزما در ضمن پوستش خشکه اینجا میتونن از روغن به نفشه طبی استفاده کنن در 24 ساعت یک الان دوبار کافی یه بار دیگه اگزماشون شدیده و خارش پوستشون به شدته بگونه ای که اینقدر میخوانه که خون میاد و تا خون نگیره این سیکل معیوب خارشش برطرف نمیشه تا خون نیاره اینجا روغن کشنه روغن کشنه یا قاست با قاف و ت دست دار قاست این قویترین دارو زده خارش حک و زده اگزما التعاب پوستیه بعد چیزایی که تحریک کنه پوست و حالت کهیر یا شبه کهیر ایجاد کنه نباید بخورند و نباید تماس با بدن باشه مثل چی؟ مثل پرز به، پرزای قهوه‌ای باشه مثل پرز کیوی مثل پوست زمینی مثل موز نیمه نارس یا نارست مثل گوجه فرنگی یا رب گوجه فرنگی که نارس یا نیمه نارس تمام اینایی که گفتم حالت آلرژیک پوست میاره و همچنین خارش پوست میاره در موز نارس و نیمه نارس و گوجه فرنگی نارس و نیمه نارس هر کدوم دو سن من داره که او باعث خارش پوست میشه که فرمایشات متخصص سنشناس دکتر سبوره اردوبادی استاد سمشناسی دانشگاه آزاد آبادگان تبریز تو بحث کتاب سموم میکروبی در اسلام قرم که زمان شاد چاپ شد موامنا و تو جمهوری اسلامی تجدید شد میتونه از متخصصین سمشناس سوال کن یک بار دیگه نه، تماسیه مثلا این چیزای پلاستیکی یا کاوچویی یا اندی افا یا تخت سلا یا نوپان مشتقات شیمیایی یا ترکیب از هر دو این ها پوستشون حالت کهیر یا شبه کهیر میشون کهیر از حیث پوشاکه مخصوصا لباسای زیرشون اگر نایلونی و یا نخهای پولیستریل پلی استریل باشه این هم شبه کهیر و کهیر میزنه و پشتید هم میشون. وقتی که تحرک دارن یا تعریق زیاد دارن بدترم میشه حتما لباس های زیرشون یا هر جایی که لباس دارن که تماس به بدنه لباساشون نخی یا کنفی و کتانی باشه که هم عرقشون کم بشه هم جذب عرقشون زیاد بشه ترسته این هم التها به پوست نیاره پس لباساشون نخی کامل یا و علیاف کنفی و یا کتانی باشه متشکرم اتفاقا من افرادی رو دیدم که مداماً کف دستشون تعریق میکنه یا بدنشون تعریق میکنه که پرسشی رو هم در این خصوص مطرح کرده بودن نمیدونم حالا در داروی حاج آقا خیلی آسون بله بله دارو خیلی آسون هست اینه سرکه سیب طبیعی خون‌های مردم هست یک دستمالشون رو آغشته کنن به سرکه سیب بعد مثل کسی از هم میخوان مچه قوی بشه بله. حالا اینم هم دستماله که آغشته کردن به سرکه سیب اینطوری کنن دستشون رو عرض کف دست کم میشه و کم بو کف پاشون و لای انگوشتاشون با پنبه آغشته به سرکه سیب بکشن لای هم بکشن عرق کف پاشون کم میشه و کم بو لای انگوشتای پاشونم دوچار قارچ نمیشه. زیر پاشون بالش بگیزنن تا خوشه تصالب فهم اینه برد. شب تا صبح وقتا یه ذره میزنه تا به سون مثلا شده همش کف تو پاشه برای اینکه کف پاش کم عرق کنه و کمبو باشه هفته ای دو الاسه بار روز در میون تو کفششون پودر جوشیرین بریزن پودر جوشیرین عرق کف پا کم میشه و کمبو اگر میخوان کف دست پاشون عرقش کم بشه یا زیر بغل و یا جاهای دیگه عرقش کم بشه و بو قبل از حمام پودر حنا بزنن بعد از حمام هنوز خودشونو خوش نکردن پودر زمه پودر زمه حال اگر بخوان همیشه پوستشون خوشبو باشه عرقشون هم خوشبو باشه هر روز یه استکان گلاب طبیعی بخان ماشاءالله سر کاشونون این ماشاءالله هر روز یه استکان گلاب طبیعی بخورن بخواد این فازش قوی تر باشه مثلا هم یبوست داره هم پوستش بد هم عرقش بد حالا همین یه استکان گلاب طبیعی رو با یه قاشق بخوری پودر گلبرگ گل محمدی مخلوط کنه بخوره سه منظوره هم پوستش خوشبو میشه هم عرقش خوشبو میشه هم یوبوست مزمنش خوب میشه بسیار عالی <تصفيق> خب در خصوص رفع خشکی پوست هم پرسش مطرح کردن که اگر اجازه می چون فرصت نداریم ای می بدن میتونن هاجگاه روغن کنجد بله. مخلوط با عسل سوبا یک قاشق پلوخوری بخورن یا ارده یزد هست مال ارده تون بله مایع یک کیلو یک کیلو هم عسل مخلوط کنن هم بزن این بستنی کش میاد هم مقاومت پوستشون بالا میره هم پوستشون نرم و لطیف میشه تا منهای 22 درجه زیر صفر پوستشون ترک نمیزنه. صبح یه قاشق پلوخوری بخورن یا وقتی که میخوان برن حمام 20 دقیقه قبل حمام بکشن به بدنش پودر کنجد و مخلوط ترصدر. بله اون عصو خرده عصای زماد و پماد تا روغن کنجد روغن کنجد بل. خیلی متشکرم. خب با تشکر از همراهی شما بینندگان عزیز ایزمه می‌خايم که پرسش های باقی مانده رو ان شاء هفته ی آینده که در محضر استاد حسینی مطرح بکنیم تقاضا می کنم تلفن های سازمان اشغال نکنید سامانه 36225 در اختیار شماست به اتفاق مهمان عالی قدرمون استاد حکیم مدرس طب سنتی و اسلامی جوارجای زیایی و همه همکاران خوبم هم با شما خداحافظی میکنم و پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو می شاد باشید التماس دعا خدامگه